امروز این فرصت برای ما ملت ایران فراهمه. ویروس فراهم نبود. عزیزان من، جوانان عزیز. ویروس سخت بود. امروز در دوران جمهوری اسلامی این فرصت برای آهاد جامعه هست که حرکت کنن، درست حرکت کنن، درست زندگی کنن، مؤمنانه زندگی کنند، با افرد زندگی کنند. نه راه گناه بسته است، راه گناه همیشه بازه، اما راه خوب زیستن، مؤمن زیستن، عقیف زیستن هم، در زیر سایه اسلام باز است، و البته اینجور زندگی کردن، لذت های را دارد، سختی های را هم دارد سخت های جعل جعلنا لکل نبی تذلك جعلنا لکل نبی عدبا شایقین الانس و الجن یوشی بعضهم الى بعضن زخرف القول غرورا همیشه در قبال خط دران دشمنان بودن دشمنان که شیاطین هنس، شیاطین جن. در مقابل این صف بظاهر ظاهر عریض و شیاطین صف پولادین و استوار مؤمنان قرار میگیره. این ملت ایران تجربه کرد. و معلوم شد که میتوان پیروز شد بر دشمن همچنان میتوانم به الله ملت ایران تا امروز پیش رفته